و مشابهینش چند هم؟ هستند و اضافه شدن و تصنیه هم دلالت بر تکثیر میکنه و اون که دیگران ادعا کردند که مثل یونس که این اسمی مفرد مثل فتا صحیح به نظر نمیاد دلیلش هم اینه که مشابهتی با لدا و علا و علا که ایشون ایجاد کرد ندارد و دوالای و همچنین دوالای کلبا مثل لبا میمونه مثل لبای میمونه نحو دوالای که و دوالای کلبای نحو دوالای, دوالای که یعنی چی؟ یعنی تداولن بعد توا تداولن یعنی تداوله پشت سر هم معناهو بقلش بنویسید که معنا معناش مثل معنی لبیگه ای اخزن بعد اخزن تناول تداول یعنی اخزن بعد اخزن معنی دوالایی كم یعنی چی؟ یعنی لبیگ یعنی اطاعت چشم تداولن بعد تداولن یعنی بیچسبم عمرتو رو بعد از چسب. و سعده سعده چی؟ نهو سعدن نه و سعدایک ای سعدن بعد از اصلش چی بوده اصل اون مثلا دوالایک باز مثل اول گلکای باباین فعل درست میکنیم اینجا هم سعدایک رو فعل درست میکنیم میگم اصلش بوده اسعدو اص که اسعادین. اص اصلش بوده چی اسعدو که اساداین بعد اساداین اومده جایه اس ادوکر جای فیل نشسته شده اییاکه اس آداین درسته؟ بعد چی شده اس آداین مصدر مرخم شده شده چی سعداین بعد سعداین اضافه شده به کاف شده چی سعداین مثل اولک و لگل که درست کردیم این فقط چیه اس ادوکر اس آداین اصعیدو که اصعاده بعد از ای سعدن بعد سعدن یعنی اعانتن منکر, منکر مثلا اگه بگیم لبیک اگه بگیم لبیک سعده ایک لبیک سعده ای چون که سعده فقط بعد از چی میان؟ لبیک میان یعنی به تنهایی استفاده نمیشه لا توست عملو الا بعدا لبیک. لب اگر گفتیم لبک سعده معناش چیه؟ لبک گفتیم یعنی چی؟ یعنی اجابتن بعدا اجابتن یعنی اجابت میکنن طوره خداوند اجابت کردن بعد سعده ایک چی یعنی خدا یا کمکم کن اعانتن بعده اعانتن یعنی اعانتن من که بعدا اعانه اسعادن من که بعد اصعاده کمک کردن از تو بعد از کمک ای اعانتن من که یا رب بعد اعانته ای اطلب لب من که علی اعانته یعنی طلب میکنم از تو چی؟ اعانت رو لبه اکنی حرفت رو گوش میکنم سرده که از تو کمک هم میخوام تو این هم گوش کرد. گفتیم که بعد از لبه جمعی و شرز ایلا و یدهی للبا شرز هست قابل غیاس نیست ایلا و یدهی. واقع شدن یدهی بعد از لبا فی قول شاعره گعوت و لما نابنی مصورن فلبا یعنی فعجابن فعجابه فعل از تو پاید اما دوممی فلبهی مفهول و مطلقه یه فعله فلبه یدهی مصفر لبهی اضافه شده به یدهی و یدهی هم به مصفر مصفر اسم کسی نیشه رو تجیب کرد و کذا ایلا اوهو زمیر قائبه و همچنین واقع شدن زمیر قائب بعد از لبا اون ضمیر غائبن چیه مفعول اوله و ثانیه بعد ایلا ضمیر غائب بعد از تفا فی قولی در قول ان شاء الله انک لو دعوتنی ودونی زاتو مترعین بیونین یعنی بیونی لقلتو لبی لمن یدون شاهد سر لبیه که بر چی در اومده زنی این نکر همانا تو کاف اسمش لو فعل شرط و جزای شرط رو هم دیگه خبر این هست لو دعوتنی دعوتنی فعل و فائل و مفهول این به هسته این فعلش هسته همانا تو اگر فراخانی مرا صدا کنی مرا واقعا به حالی هست و دونی زورا او. و در مقابل من زورا زورایی باشد یعنی زمین وسیع صحرایی باشد یعنی یک سهرا و یک زمین وسیع هم بین من و تو فاصله باشد جملہ خبر مقدم زورا مبتدای مؤخر این جمله حال است از برای یای دعوتنی زورا و ذات و ذاتو مؤنث صفت است برای زورا ذاتو مطرحن بیون ذات اضافه شده به مترع بیون هم صفت میشه صحرائی باشد المطرح یعنی الممتد صاحب امتداد البیون یعنی خیلی بعید وسیع به چاهی میگن که تهش خیلی گود باشه یعنی صحرای خیلی وسیع و ساحلای خیلی منتظی هم در مقابل من باشه که اون صحرا صاحب امتداد و وسعت باشه بیونه لغول تو جواب چیه جواب درامتنی میگه اگر منو بخونی و در مقابل من یه صحرای سینایی هم فاصله باشه لقلت و لبی میگویم لبی میگویم اجابتت میکنم اجابت میکنم او را میگر اجابتی بعد از اجابت چون به شکل قایه باید لقلت و لبی لمن یدون این لمن متعلق است به قلتو قلتو لمن یدعونی لبای میگم به کسی که من صدا کرده چی؟ که من زورتوی لبای لبای که میگم این لبایی که میگم اجابت میکنم همین که بگی خودانی صدا کنی من با شتاب به سوی اون صدا کننده خودم که تو باشی اینه. لمن متعلق هست به قول به یدعونی فعل و فاعل و مفت فاعلش آهده سره به ما لَبَّی مفعول مطلق یه فعل مقدم ها بوده مش بود لهو البابین بعد شده البابین لهو بعد شده چی لبین لهو مستر مرخم بعد اضافه کردیم نون و لام افتاده شده چی لبای مفعول قولی است چون مفعول مطلق فعل دیگه که برای تکسیرم تصنیع و تصغیر لبَّی ده من غاله فی شرح تسهیر میگه این که با زمیر قایب بیاد رو مصنف در شرح تسهیر گفته اسم ظاهرش رو اینجا گفته زمیر قایبش در شرح تسهیر گفته زمیر قایب در حکم چیه؟ اسم ظاهرم در حکم زمیر قایبه این دوتا رو معادله همه هم. نقطه سرخند. و خود و اضافه اضافتاً علل جمل تا اینجا اونهایی ای رو میخوندیم که لازم و اضافه به سوی مفرد بودن که بعضی ها فقط به زمیر اضافه می شود حالا میگه گه و الزمون اضافتن الالجمل حیث و عز و این یونبن یه و الزمون واب وابه آتفه است بله خیلی قبلش خیلی و علزمو اضافتا ال جمله هيسو و عز علزمو دو مفعولیه ضمیرش میخوره به حرف لازم کردند عربها ها و عز اون هيسو و عز به هم عضو شدن مفعول اول علزمو است الزام کردند هيسو و عز به چی الزامشون كردند به اضافتا ال جمله به اضافه شدن به سوی جمعه اضافه به جمعه یعنی حیث و اضافه میشن به سوی جمعه اون موقع حیث و اگر مبنی شدن به چه دلیگ؟ عز که آره شباهت وزیدی داره دو حرفیه حیث و شباهت افتغاری دارن آه. کفتغار و سلاح اضافتن مخبول ثانیه برای حلزمو علال جمل متعلق است به اضافتا با علامتن از گاهی اوقات از مزافنه رقیه خودش چی میشه؟ جدا میشه یعنی به شه مفرد میاد میگه و این یونفن زمیر میخوره به اولین مرجع کدومه؟ از ها؟ تیسو و از و این یونفن میخوره به از و اگر منفن شود از یعنی تنوین بگیرد از که تنوین عوض است جمله مزافنه رقیه این یه تمد یهتمد یعنی چی؟ یعنی تنوین گرفتن از احتمالش هست یعنی یجوز جایز هست که از قطع از اضافه بشه و تنوین عوض از مضافه نلعه بگید بیانی یونبون فعل زمیر نایفایلش یهتمد فعل زمیر نایفایلش جزای شرط درسته؟ اون فعل شرط این جزایشه واقع و این یونبون هم واقع آتفه این یونوون گفتم زمیر نایفایل یهتمل نه؟ نه این, یو، این یونوون یهتمل افراد و از ما گفتیم احتمال داده میشه قد شدن از دیگه خودش نایفایل رو چیه؟ ذهب کرده افراد و از افراد و از نایفایل یهتمل احتمال داده میشه افراد از میگاه کنید اینجا یه گیره میگه اگر تنویم بگیره از یعنی بشه این ازه احتمال داده میشود افراد است احتمال داده میشود یعنی چی؟ یعنی قطعی نه وقتی که تنویم بگیره دیگه چیه؟ قطعیه منظور از این یهتمل یعنی چی؟ یه جایز است که بعد کنیم اون موقع چی رو؟ از رو از بگیره یه جو تزمیم کردیم یهتمل معنای ازم یا یهتمل به معنی اینه که افراد از اینجا تحمل شده احتمال داده میشه نیست یعنی چی یعنی به دوش کشیده میشه افراد حمل میشه افراد از اینه معناش اون و ما یه مطلب جدید است که سنگینا هست بریم باییم و الزمو اضافتاً الالجمل لازم کردن هیثو و از را اضافه شدن به سوی جمله ها اسمیتاً کانند او فعلیتاً حالا اسمیه باشن یا فعلیه باشن فرقی نمی کنه هیثو و از نه و از تو جلستو هیثو جلسته زیدون میگه جلستو فعل واهل هیثو زلف زلف مکان از ظروف مکان فقط همین یه دونت که به جمله اضافه میشه و جلسه زیدون مضاف الیه تأسیری شد مبنی شده واسه خاطر چی واسه خاطر اینکه شباهت افتقاری داره نیازی به جمله مضاف و مبنی بر حرکت شده چرا به خاطر اینکه التقاء ساکنه چرا ذمه به خاطر شباهت به قایات قبل و بعد که اونها مبنی بر لم میشن و مضاف و در اینها نقشه اساسی داره حالا چرا اضافه موارزه نکرد به دلیل اینکه اثر اضافه ظاهر نمیشه چون اضافه به جمله اثر ظاهر نمیشه لذا اضافه اینجا به حدی قبی نیست که شواهد استقراری رو چکارش کنه از به و حیثو زیدون جالسون اینم مثل اون قبیه فقط این جمله جمله چیه اسمیه هست. اضافه میشه به سوی فعلیه و اضافه میشه به سوی اسمیه فعلیه رو مقدم کرد چون اضافه شدن به سوی جمله فعلیه بیشتر من حیث لا من هیچو لا یحدثه ها وضع کرو وضع کرو و یاداوری اذکنتم از اذکنتم قدیدان وضع کرو فعل و این از مفعولم به نه مفعولم بی یک روز دوبر جدی جای مفعولم بی باشه بعد بگیم یاد آوری در اون روزی که اون روزی که قلیل بودن تموم شده رفته ولی میتونیم بگیم یاد آورید آن روز را آن وقتی را که کم بودیم کرو فهل و فائل اسم به بهبرو عذر کرو کنتمتم اسمش قلینا چیه قلیم چون بر وزن فعیله مفرد تصنیه جمع مزکر معنیست یه جور بیان وزن فعیل نظر نگاه کنید و از انتوم قلیلون این هم آقای قبلش داره وزن کرو وزن کرو از انتوم بلیلون اینجا برسر چی در اومده؟ مفتداب و خبر از در اومده ترکیبش مثل قبلیست از مفهولون و شزد اضافت و حیسو الال مفرد فیقونه که خوندیم این دو. که حیسو اضافه شده به سوی چی؟ مفرد و شزد و شازد یعنی قابل قیاس نیز اضافه شدن حیسو به سوی مفرد در قول این شایر اما ترا حیسو سوهیلن تاله ان نجمن یوزی و کشترها به لانا بعضی هیلو خوندن حیسو سوهیلن اگر حیسو سوهیلن باشه علتی برای بینا الان ما نداریم چون دیگه اضافه شده به چی؟ مفرد و اضافه هم معارضه میکنه اثرش هم ظاهر شده سحیلن علت که نداریم برخلاف علت داریم اضافه. علت برای بنا نداریم اما خلافش رو چیه داریم پوهنی که اینو معارضش کنه اضافه از خصوصیات اسم اگر مبنی می خونن فقط به خاطر شباهت لفظی این حیثو با حیثوی قبلی که علتی بنا شباحت افتحایی و اینجا روایت هم شده حیصه سوحیلن و آیه ابنشان تو کتاب محنی خودش میگه من خودم به خط اونایی که این شعر رو نوشته بودن و زبد کرده بودن حیصه سوحیلن اگه حیصه باشه میشه چی؟ محرم و منصور اضافه شده به سوحی دلیلی هم برای بناش بگید و همچنین روایت شده حیث و سوحیلون باز ابن اشان میگه حیث و سوحیلون روایت شده میگه اگه حیث و باشه مثل صورت اول سوحیلون میشه مفتدار خبرش چیه؟ موجودونه ماخرد همزه همزه استفخان ما مای نافیه ترافل زمیر فاعلش حیثه زر متعلق به تراف سوحیل مضافنه نهی حاله هن حال است از برای نجمن مقدم شده برش چون نکره هم هست دید. نجمن لزومی می چون نجمن نگره مخصص هست ولی مقدم شدنش بیشکال نجمن مفعول تراب یوزی و فیل زمین فایلش که به نجمن میخوره رابطه رابط جمعه استفاد به موضوع کشه و لامه هردو هر دو حال هستن از برای فایل یوزی معنای میشه آیا نمیبینی در مکان ستاره سُهیل در جای ستاره سُهیل ستاره را نجمه در حالی که طلوع کرده است این ستاره ای که که درست ستاره ای که می درخشد در حالی که مثل شهاب است و فروزان خروزان و درخش و این یونبون از و اگر از منبون بشه و این یونبون از و یک سرزالوها و وقتی تنویم بدین به از تنویم ساکن ظالم ساکن ازلطق از ساکنها این هررکه هررکه برکست کسرم باید بدیم لیلتقای ساکنه یهتمل میگه یهتمل ای معنا میکنه یعنی یجور یعنی به دوش کشیده می شود افراد اسم تحمل می شود افراد یعنی یجوز افراد جایزه که از اضافه چیه غلط افراد یعنی قد شدن از اضافه افراد ان اضافه است. یجوز افراد و اسم و جعل و اعوج افراد و جعل تنوین به وزن اما توضافو و قرار دادن تنبین رو عوض از آن چه که اضافه کرده می شود از به سوری یعنی مضافه نوید تنبینه نه و مثال و انتوم هینه ازن تنظرون مبتدا مبتده تنظرون خبرش هینه ازن یعنی هینه از بلغت روح و الهلغوم هم. و شما موقعی که روح به هلغوم برسه می نگریم نزارگر هستی هینا ازن اون بلقد ار روحو جمله مزاقون علید بوده افتاده جاشتی اومده این ازن متعلق است به تنزیرون و ما که از مطلب جدید از خود کش کنیم از خودش مبنی می شد واسه خاطر چی؟ واسه خاطر این که شباهت افتقاری داشت در این حال چی چی؟ شباهت هم داره حالا بعضی کلمات هستن شبیه به ازن این مبحث که الان شروع کنه یعنی مشبه از بعضی کلمات هستن مثل از هستن از نظر معنا یعنی زمان رو می و زمانش هم زمان مبهم یک چنین کلماتی اگر اضافه بشن به جمله آیا مورد بخانیم یا ممنون مثلا هازا یومو ینف و صادقینا صدقو قال الله قال که میگه منظور چیه؟ مستقبل قیامت نازل به منزله مازی شده قال الله پس برمانی یوم اینجا چیه؟ نازل به منزله ازه چون قیامت شده چی؟ گذشته این قبلا هم بحثشو کردیم که مستقبل محقه و الگوه در حکم ماسیست قالت لا حاضا یومو الان حاضا مقتدر یوما مشبه ازه اضافه شده به چی؟ به جمله ینف و صادقی نه؟ صادقی مفهول مقدم صادقی مفهول مقدم مقدم چون محقه چون زمین مفهول واجب بوده که چی؟ مفهول برش مقدمش یعنی فقط صادقه نستید الان میتونیم بگیم این یوم اینجا مبنی بخوانیمش اگه محرم بخوانیم میگیم چی؟ میگیم یوم افتقارش افتقار اصلی نیست چون یوم افتقارش افتقار چیه؟ آرزیه اینجا شده شبیه به از محتاج به چی شده؟ در جمله شده و الا یوم در جایی که مشابه عز نیست مثل هازا یوم الجمعته یا یوم الجمعته یا یوم مبارک نیاز اصلا به جمله بگید نگید شباهتش افتقاریه اما انتقالش اصلی است اگر مربی بخونیم میگیم به خاطر که انتقالش اصلی هست اما اگر مبنی بخونه میگن به خاطر که بگید جانبشت های از شده شبیه به ازه افتقارش هم درسته که اصلی نیست آرزیه ولی همین افتقار آرزی بگید یه مقدار اجازه میده که شما چکار کنید؟ مبنی بخونید لذا همین آیه رو خوندن هازا یومه یعنی به اصاله دینا این یومه که خوندن مبنی برپرد خوندن چرا؟ به دلیل این گفتن شباهت افتغالی و آرزی هم یه ذره کار کنه؟ تأثیر کنه گوش کنه در مباعث سیفیه که من همش حل میشه و ما کعز معنن کعز از عزف جوازن نهو هینجاعه نو بزن و و آتفه ما کعز معنم چعز عذف جوازن ترکیبی که ما صحیح میدانیم بریم. این خیلی ترکیبات کردن بر این شعر اونچه که به نظر میاد که راحت تر باشه اینه ما رو میگیم مبتدا چعز بشه سلش یعنی ما استقرد و کعز هر چیزی که باشد ماننده بگید از معنن همیست برای که از باشد که از از چه جهت؟ از جهت معنا از جهت معنا مثل از شده ظرف است محدود نیست و از اون طرف همچی؟ اضافه به جمله هم شده معنن که از اون که از رو میکنیم چی؟ خبر آنچه که همانند از است در معنا همانند از میشود در لفظ یعنی که از لفظا مثل از میتونیم بیاریم لفظا یعنی چه کنیم بگیم شباحت افتغاری بشه بدیم و بعد میگه ازف جوازن این ازف جوازن ازفه زمیر فائلش مفعولش به قلیل ماغم حذف شده یعنی عذف ما کعز جوازن اضافه کن آنچه را که مثل ازه است جوازن جوازن یعنی اضافتن جوازن مفعول و چیه؟ نیابتیست این نیابت از محصوبش پس اول گفت آنچه که مثل عز است در معنا؟ هماننده از می شود بگید در لفظ خیلی می توانیم مبنیش کنیم شباهت افتقاری حال زی اثر بدیم بعد گفتیم چجور منظور گفت از اف خو. اضافه کن او را جوازن اضافه کردنی چی؟ جایزی در مورد خود از چیه؟ واجبه در مورد این؟ جایزی از اف خود جوازن اضافه کن او رو جوازن مانند چی؟ نهو نه هینه جاه چی؟ نوزه، نوزه. الان نگاه کنید نبزه بعد بقید نبزه بنویسی زیدون که به توی داخل نبزه زیدون نبزه یعنی چی؟ کنار گذاشته شد تر شد ترد شد زید ترد شد هینه جاه هینه الان چیه؟ ظرف هست متعلق است به نبزه مثل ازه، انگاه گفته نبزه زیدون از جاه این جا جاعه زمیر پایش جمله شده مضافن علیه کی؟ مضافن علیه اینه پس اونی که مثل ازه است در معنا مانند از می شود در لبس یعنی چی؟ یعنی اضافه کن به شکل جایزی مثل خود از اضافه کن نهو هینا جاعه درست؟ معلوم شده بارت یا نه؟ عزف جوازن نحوهی نجاعن نو بز. اون مثال نحوه یعنی مثال اون نحوه قبر محتدایی محصول بیایید و ما کعز معنن و آنچه که ماننده از هست معنن ما گفتیم معنن چیه؟ تمیز خلا جلال میگه منصوب به نزعه کافز فل معناه. درستو پی کردن گفتیم تمیز دیگه نیازی به اینکه این رو هم زحمت بکشیم نیست. فل معناه. میگیم چیه اونچه که مثل عز باشه منظور چیه؟ میگیم بقوه کل و اسم زمانه. هر اسم زمانی که مبهمه، مبهم است، مازن یعنی محدود نیست. مبهمه، معین نیست. مازن، مازی هم بگید. اسم زمان ماضیه غیر محدود، غیر معین. هست آه کعز عذف مثل خود از چی میشه؟ اضافه میشه علم جملت اضافه میشه به سوی هر دو جمله یعنی میتونه جمله بشه مضافه علمی آخه اون که ما کعزه مثل یوم یوم اضافه نمیشه به سوی جمله میگه اگر معنای از رو دربر کرد میتونه اضافه بشه به سوی؟ جمله اون موقع جایز است اضافه بشه سوی چون میشه مثل خود از دیگه اونی که مثل از از در معنا مثل از هم میتونه در لفظ چی بشه اضافه بشه به هر دو جمله جمله اسمیه جمله ال جمله جوازن یعنی اضافتن جواز نعم و مثال مینجاءن رو بزن این یک مثال وجئت وكهين الحجاجا امير اینجا اضافه شده به سوی چی؟ جمله ماسی اینجا اضافه شده به سوی جمله اسمیه اون جمله فعلیه این اسمیه هینا عله حجاجا امیرون عله حجاجا مستدار امیرون خبرش این جمله مشاکنه لگه جهتو کفل و, و حالا این هینا الان بگیم مورد است یا مقنیه مثلا هین جهتو که هینه اله حجاج و امیرون بگیم جهتو که فیل و فایل هینه پونکاخ منصوب به نظر خافست هینه منصوب مفهول و فیل اله حجاج و امیرون جمله مضافون ببارد. یا بگیم هینا مقضی برفرده کدومش هینه جا انو بذر بگیم هینا منصوب است لبسن یا بگیم منصوب است محلن مقضی برفرده چطور؟ اینو میخواد توی جمله بعد معنا کنه و بگه پس دوی این عبارت تا الان چی گفتیم؟ گفتیم هر اسم زمان مبهم غیر محدودی که ماضی هم هست اگر معنای از رو گرفت و مثل از شد یعنی زرف زمان ماضی مبهم شد مانند خود اسم میتونه اضافه بشه به سوی جمله. حالا اسمیه یا او اعرف یعنی چی؟ و مبنی کن یا مورب کن یعنی هینه جاان و بزر بگو اینا مبنیه محلن منصوب یا بگو چی اینا مورب و منصوب لبزن ابن او اعرف ما از ابن او اعرف برای چی ما از بر سر ما نزاع کردن عملو به کدوم ها دادیم دومی بره اولی و از زمیر می آوردیم که نه پس بشیم از صله ماست این او اینجا برای چیه برای تغییر نه یعنی تو مخیری که مبنی کنی مخیری بگی معرب کنی هر دو چیه جایزه یعنی مبنیش کنی بعد بگی که شباهت آرزی ها آرزی اثر کرد معربش کنی بعد بگی انتقال آرزی اثر نداره اصلی که قد اجرا، این قد اجرا فی که از به قد اجرا، که از متعلق به قد اجرا، ما که از قد اجرا، قد اجرا فی زمیر نائب فاعلش، که از به قد اجرا ما که از قد اجرا قد اجرا فی زمیر نائب فاعلش که از به قد اجرا ولی متعلقه به قد عضریت که در نمیاد آن چی گفت قد عضریت به زمیر نایب فایلش که بر می به ما این کهیز حال هست از برای قد عضریت فایلش نایب فایلش میشه چی اون موقع مبنی کن یا معرب کن آن چرا که جریان داده شده است؟ در حالی که مثل ام در حالی که مثل متعلق به مشابهن مقدر حال از تجربه معرفایه قدوش تو این عبارت چی با؟ گفت گفت هر چی که مثل اجاری شده مبنی و مرف کردن هر دوش چیه چون میگه یعنی هیچ ترجیحی نداره هیچ وا وا با وقت بنا مطلب به فعلن بنیان میگه چرا یه ترجیل داره اگر اون ماکعز قبل از فعل مبنی واقع شد اونجا اختیار کن مبنی شدنش مبنی شدنش بهتره چرا چرا یه شباحت آرزی داره یکی این هم که بعدش مبنیه مضاف از مضاف اون خودش از اون که کس یه مقدار هم کس به چی میکنه بنا میکنه یه میدارم بنای مزافرانی در یعنی الان توی هین جا انو بزر بهتره که بگیم چیه مقنیه اما تو هین علا حجاج و امیران بهتره که بگیم چیه مارده وقتر فعل و فائل بنا یعنی بناه مفهول اختری مطلوب مزافرانی در این که بنا مطلوب هم اضافه شده به. مطلوب به فعل بنیه بنیه فعل زمیر نایفایلش که بعد میگه به فعل جمله صفت فعل است. اختیار کن مبنی شدن مطلوب یعنی چی؟ یعنی سابق فعلی را که تالی یعنی واقع فعل مطلوب یعنی واقع قبل مطلوب به فعل یعنی اونی که واقع شده قبل از فعلی که بنیه مبنی شده بیایید باید مبنی کن برفت او اعرم یا اعراب بده و منصوب کن مربو کن هر جور دل یعنی مثلا هازا یومو چه خبر هازا یومه مبنی برفت یعنی با اصلا نه. ما کعیز قد اجریان امال اول اما اینکه مبنی برفت بذیش میکنیم و بل حمل علیها همش میکنیم بر اثر میگین نه اینکه همش میکنیم به از میگیم شبیه به الفاظ شباهت به مبنی کلمه رو مبنی نمیکنه مگر اینکه اون مبنی چی باشه مبنی الاصل باشه یعنی حرف باشه بلکه منظورش اینکه که بل علیه ها یعنی مثل خود از که مبنی شده به خاطر شباهت افتقاری اصلی اینم میگیم مبنی شده به خاطر شباهت افتغاری آرزید تو مثل اسم ف بله هم لعنی و اما از ثانی اما دومی اعراب بشمیدیم فعل الاصل چون اسم است افتغارش هم افتغار اصلی نیست بذاره مورب باشید فعل الاصل ولکن این ولکن میخواد بگه درسته که ما با او گفتیم و تو رو مخیر کردیم این یا اون ولی واقعیتش اینه که آ مبنی کردن موقعی که فعل مبنی بعدشه بهتره. ولیکن اخطر بنا مطلوب به. مطلوب میگه چی؟ یعنی واقعاً قبل از فعل گفتم تالی اگر خواستید بفهمید یعنی چی؟ یعنی واقع بعد مطلوب یعنی واقع قبل اسم مفعولش از طلایت واقع قبل از فعل بنیان فعل مبنی چه فعلیه؟ میگه قبل از فعل مازن یعنی بعدش بله مازی باشه مثل هینجاها نو بزن او مزاره مغلون به اهدن نون این. یا مزاره ای که مغلون باشد با یکی از اون دو نون کدون دو نون, نون تحکیب و نون جمعه مهنده است البته نون تحکیب به شرط مباشر بودنش <تصفيق> مثل لعکیدن نست نا و که وله لعکیدن و وله اگر مثلا فرض کنید که لعکیدن یزره بنده ایلا یزره مرفوع است تقدیرم به نون محبه مرفوع است به نونه مباشر باشد به نون پنجتای مفلت سیغه اول چهارم هفته سیزده هم چانده بنام مطلوب ای واقع قبل فیله بولیه مازه اموزاره ام به نه رو مثال میزنیم علا هینم علا هر کجا بر سره هین میاد به معنای فیه علا به معنای فیه تو قرآنم داریم علا هین غفرت من اهلها یعنی فیهین غفرت من اهلها این شعر قبلش داره که یمرونه یمرونه به دحنا با همزه یمرونه به دحنا خفافا یاب و خفافن یا بخون با این مثل دومانش و یرجعن مندارین اسم جاییه و یرجعن مندارین بجرل حقائبی بجرل حقائبی یه عده ای رو میگه که برای غارت یا برای تجارت غارتونه میرفتن میگه یمرونه به دهنا. می از وادی و از محله دهنا در حالی که خفافن ای ایاب همون حقاهبه یعنی ساکها کل پشتی ها شده. خفافن یعنی خفیفه سبو که هیچی دوش ندارن با کیسه های خالی می در این دهنام. موقعی که را می بر محله دهناه میگذرن گذرن کیسه هاشون چیه؟ خالیه توبراهاشون خالیه خورجیناشون خالیه حال است از برای فایل یمون بودن یا بخون فایل خفافن. و یرجه نه و بر می گردن بس اون وادی و یرجه نه و از موقعی که از دارین می بزرن. از این محل می منداری مندارین متنقه از بجرل بجرال بوجره جمع بجرا مثل تمرا که جمعش میشه چی؟ تمر یعنی پر از نوع اضافه صفت به موجوده بجر الحوائل یعنی یمرونہ بال از نوع اضافه حسنولی بچه محذب المواسع او زمان المسائل بجر الحوائل بوده چی؟ بجرن حقائب و هم در حالی که پرست است هاشون توبراهاشون رو پر کرد یعنی هر چی که گیرشون اومده لیخدن بعد اضافه شده برژه به حقائب. مثل محز زبال و واسد مثل الجهد و شرکه برژه در حقائب حقائب جمع حقیبه است یعنی کیسه چیزی که انسان توش چیزی خیزه بعد میگه الاهی این الاهین متعلقه به یرجهنه برمیگردن از دارین در حالی که کیسهاشون پر شده در چه وقت؟ در وقتی که در وقتی که الاهینه اینو دو جور خوندن الاهینه الاهینه اگر الاهینه بخونن میشه چی؟ مورد الاجرده اگر الاهینه بخونن میشه چی؟ مبنی. چرا جلدیم به معنای اضافه شده به جمله بگید جمله بل مازی و فعل مازی هم کمکش میکنی که بشه الهنناسه الها فعل انناسه مفکول شد جل و هم فاقیم الها که متقا سر مثل حضی جل و جل یعنی موزن پر میکنن تو داریم کیسه هاشونو موقعی که مردم رو کارهای مهم چه که مشغول کرده مردم صرف وقتشون و صرف جنگ و دفع دشمن میکنن، اینا زرندوزی می کنن هرچی هست جنگ جل و فن آه؟ یعنی فقال مثلا به هزه ها به پس می گوید بعضی از اونها به بعض دیگر در وقتی که بعضی از اونها این فندلن یا یه قوله یعنی فقال بعض و بعضه پس میگه بعضشون به بعضی دیگه ندلن ندلن یعنی برو با ربودن ندل یندلو یعنی خطف یختتو یعنی روبود. این ندلن الان مفقول و مطلقیه که به جای فعلش نشسته به جای فعل همدش قیاسی هم هسته. یعنی اون دل ندلن برو با ربودنی فندلن زرعی خو زرعی اسم کسی هست یعنی یا زرعی مناداست از فرق ندار مثل یوسف و هرزن هست فندلن زرعی خو علماله علماله که به جای اون دل میشه پس میگه بعضشون به بعضی دیگه موقعی که مردم قافلن چی میگن برو با این مال را ای زرعی ندل سعالبی این مفهول مطلق نوعیه مثل روبودن روباهان این ندل سعالب مفهول و مطلق است برای اون ندلن اول که به جای اون داره شد و کل جمعه ندلن زرای قلمال ندل سعالبی مقوله ی قوله یعنی الحناث جل و موره و قال بعض و هم لبعضه. چی؟ بعضی از این دوستان و بعضی میگه میگفتن زره این مالو بدست مثل روبودن واو. این مال فعل چی؟ مال فعل مازی یه شعرم من مثال میزنم برای فعل مزاره کهشون بهثال ننظر. لج تزباجه نه قلبی تند. الاهینه یستسبینه یستسبینه از سبیل گفت با سات میدیسید درمونشون یستسبینه کل حلیمه کل حلیمه استسبا یکی از معانی باب استفعال به معنای شمردنه استحسنه هو یعنی عدقو حسنا استسباهو یعنی عدقو سبیل یا اونو بچه شما کوچیک شما میگه لعج تزبند جواب قسم دیگه میکنم میکنم به خدا قسم منخون نه از این معنسات قلبی قلب خودم رو یعنی قلب خودم رو از دست اینا آزاد میکنم. قلبی مفهول لعج تزبند تحلمن یعنی من. در حالی که خودم رو چی نشون میدم حلیم نشون میدم به زور خودم رو صبور نشون میدم و قلب خودم رو از عشق ها آزاد میکنم چه؟ چه این کارو میکنی؟ لحظه از بند من هون نقلبی؟ یعنی فیهی در هنگامی که یستسبی کل لحلیمه در حالی که این محننس ها بچه بیش برند هر آدم صبوری رو هر آدم صبوری رو میگن به وادی ما بیاد صبرش از دست میده میگه در زمانی که اونها هر آدم حلیمی رو صبوری رو بچه حساب کنن من میتونم در مقابل اونها مقاومت بکنم حالا الاهی نه الاهی نه یستاسبینه سیغه ششمه دیگه اگه الاهی نه بخانیم مبنی شده الاهی نه بخانیم شده یستاسبینه کل حلیمن یستاسبینه پیرو باید کل حلیمن مبغول جمعه مضافون الاهی و سرزن در چیز